ای گشت شب و روز به دنیا نگران اندیشه نمی کنی تو از روز گران آخر نفسی ببین و بازای به خود کیام چگونه میکند با گران. ای آنکه که توی خلاصه کون و مکان بگذار دمی وسوسه سود و زیان یک جام می از ساقی باقی بستان تا باز رهی از غم این هر دو جهان از گردش این دایره بی پایان برخورداری دو نوع مردم رادان، یا با خبری تمام از نیک و بدش، یا بیخبری از خود و از کار جهان. احوال جهان بر دلم آسان می کن، و افعال بدمز خلق پنهان می کن. امروز خوشم بدار و فردا با من، آنچه از کرمت سزد به ما آن می کن.